تعرض بشه وعناية حضرت شاملة هال بسم الله الرحمن الرحيم إله عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتها ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرأ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساء الساء الساء العجل العجل العجل, العجل. يا ارحم الراحمين بحق محمد و اله الطاهرين بسیار خرسندم امروز در محضر عزیزان چون شما صبور و فرهیخته واقعا لذت بردم از دقیقه دقیقه واقعا خسته بودم از این چند روزی که کلاس پشت هم دیشب تا آخر شب مشهد امام رضا نایب زیاره بودم و تا برستم و خستگی و رفعه گفتن آقا اگر خسته گفتم نه لذت بیبریم واقعا خستگی ما برطرف شد با دیدن عزیزان ما آموخته این در حوزه علمیه و در مجامعه علمی که اددلیل لمن دا باید دلیل داشته باشه کسی که ادعا بکنه بسیاری از مطالبی که در عرفان نظری مطرح می شود نه از باب تنقیز که جناب معلمی نکتهی به سزا فرمودن نه این طرف تکفیر و نمیدونم کفر فقهی و این حرف بخوایم افراد نه افراد و نه تفرید ولی باید مطالب هم مبرهن باشه و مستدل باشه چیزی که من عرض می کنم شما از من دلیل می خواهید. میگه جناب سخن دلیلتون برای مساله چیه خب این ادعایش است که شما دارید دلیل بی اد... ادعای بی دلیل مزهکه و پذیرش ادعای بی دلیل یک شخص ادعای بیرو علو من چرا از او بپذیرم بدون دلیل قطعی ما چگونه میشود که اثبات سانه را بدون برهان یک انسان آقل نمی پذیره مباحث توید بعد اینجاها افرادی بیان بگن به قول جنابای معلمی که من خصوص رو مستقیم از خداوند گرفتم و با هم بگیم چون جناب ابن عربی فرمودن سمن و طاعتن این که به دور از علمیته و به گونهی میشه گفت مزهکه تو هر جمع علمی مطرح بکنی بهت میخندن که چرا ادعا کردی آیا به اون نازل شده یا معصوم یا نبی یا وسیعه نمیم مزهکه عدل نقلی وحدت وجود عدل نقلیش یک بحثه که ارز کردم جلسه صبحم کتاب تنظیح المعبود فرد علا وحدت الوجود جناب استاد سید قاسم علی احمدی دلائل قطعی عقلی مطرح کرده و واقعا مبتلا به پارادوکس عقلی میشیم که چگونه میشود یک شید در آن واحد هم به شرط شی باشد هم به شرط لا یمکن؟ محال عقلیه پرادوکسه و دلال عقلی قطعی دیگر که اگر مرد می دانند آنها که پاسخوه هستند بشمالله ردیه بنویشند ببینیم چقدر استخان دارد از نظر علمی اما نمی در این قضیه وحدت شخصی وجود حالا باز این شخصی به زبانم هی حیعادت کرد وحدت وجود حالا با تعابیر و چیزی که جناب های هندی هم فرمودند که <تصفح> <كه> 19 <تصفح> تقریر شده از این وحدت وجود آیا در ادله نقلی ما نیز جایگاهی داره یا نداره؟ ارز کردم جلسات گذشته که ما مذهبی داریم که اهل بیت او برای کوچکترین فرع فقهی ده ها روایت برای ما آوردن و آمده اند اساسا برای توحید آیا این نظریه دلائلی در سقلین هم دارد یا نه؟ روایات و آیات که باید قطعا از قطعیات و مسلمات نقلی به مباحث اعتقادی پرداخت خبرواهد و حجید خبرواهد اون دعوات و بحث فرو جای خود داره بحث اصول عقایده نمی توانیم در یک تبا تک روایت در یک گوشه ی کتاب مثلا حافظ رجب برسی بخوایم با مفردات حافظ رجب برسی یا بعضی از کتب دیگر چون او گفته و تک روایت اعتقادات بنا کنیم قطعا صحیح نیست حالا ایتالیه سخن نکنم و در این موضوع درنگی در عدله نقلی وحدت وجود اینشالله از محضر جنابای توبایی استفاده میکنیم و به پیشواز سخنانشون میریم از اساتید حوزه علمیه قم و اینشالله از بیاناتشون استفاده می‌کنیم و صلواتی محضر حضرت معصوم تقدیم می‌کنیم. الله, الله. الله. الله. سلام سلام علیکم. بسیار خوش آمد بسیار گوارید. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم پس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صل الله على محمد و وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صاعة وليا مخافظا مقايدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طبيلا السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة المعصومة السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا اهل بیت النبوبه خب به همدلله توفیق شد که در این روز اول ماه زلقعده روز ولادت بی بی فاطمه معصومه و در این اوقات مبارک عصر جمعه در محضر همه عزیزان باشیم انشاء الله این جلسه رو هدیه کنیم به بی, بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیه خب بحثی رو که فرمودن که در خدمت عزیزان باشیم بحث عدله نقلیه وحدت شخصیه وجود است خدمتون عرض بکنم که مقدمتا قبل از این که به این بحث برسیم این رو عرض بکنم که ببینید در هر جریان علمی و روش علمی علل بحث این است که انسان از طریق لم به بحث بپردازد یعنی چی؟ یعنی اینکه ابتدا شما به عدله یک مسئله مراجعه بفرمایید و بعد از عدل منتج شوید شما به نتیجه و به اون مسئله و به اون چیزی که مدلول این دلیل هست در همه جا همین است و این به اختزای ساحت بشری اینگونه است و بلکه بالاتر به اختزای اصل اساسی بدیهی اولی ما که حالا اصل امتناع اجتماع نقیز این هست که حالا مربوط نواحظ عقلی هست ما منتج به این مسئله می شریم. به طریق ساده ترین رو میخوام خوام عرض بکنم که این غلط است که شما اول یک چیزی رو حق بدانید بدون دلیل و بعد دست و بزنید و دنبال این بروید که برای اون دلیلی درست بکنید این هر جا این مسئله مطرح شود این خوب شما عرض بکنم این رو از ساعت علمی دور می‌بینید و بعضاً هم مونتاج می‌شود به یک نتایج مسخ و خنده خیلی خلاصه عرض بکنم حالا ورود به ساعت‌های عدلیه نمیدونم عقلی و مباحث تاریخچه این وحدت شخصی و وجود و جهات دیگر ها خب عزیزان تا یک اندازه‌ای براتون مشخص کردن تو روشن کردن. خدمت شما عرض بکنم که اولا حالا این رو بیان بکنم که بعد واقعا به نحو حقیقی بستر در وحدت شخصیه وجوده یعنی اون چیزی که شما در کل تصوف مشاهده می کنید. یعنی از کلمه اول عرفان نظری شما گرفته تا کلمه آخر اون در کل کتوب عرفان نظری از ابن عربی گرفته به بعد و بلکه اون چیزی که در آثار متصوفه قبل اون محققین متصوفه واسفی واسلین متصوفه می بینید اون عملاً وحدت شخصیه وجوده یعنی ما در عالم یک شخص داریم فقط یک شخص و اون خداوند متعال است و هست خب این بسیار عرض بکنم که واضحه و در کل آثار ارفان این و ابتدایی مبحث ارفان نظری هست و فلواقع هم متصوفه یعنی عبارات صوفیه هم متعدد است در این مسئله خب به این مسئله پرداختن یعنی حالا مباحث دیگری که به عنوان وحدت سنخی یا تشکیکی یا قصه الهاز را مطرح می شود اونا در بستر وحدت شخصی وجود درست شده چرا اونا خودش بحث مفسری داره یعنی الان فرصتش این نیست که من اصلا خدمت شما عرض بکنم که اصلا بر چه اساسی مثلا صدرا این وحدت تشکیکی وجود یا وحدت سنخی رو مطرح کرد و الله آن چیزی که مسلم است در کل آثار عرفان نظری و آثار متصوفهی ای که اینها علمی هستند وحدت شخصیه وجوده و اینم من حالا اینجا تصیح بکنم چون حالا ما بحث رو نبودیم، نمیدونم، حالا چقدر معرفی کردن برای آقایون ما چند دوره کل عرفان نظری رو از صفت تا صدش رو تدریس کردیم بلکه فراتر از آن چیزی که الان در حوزه علمیه تدریس میشود معمولا های میدانی داشتیم این اگر تاریخچه وحدت شخصی وجود رو خدمتتون مثلا اشاره ای الان مثلا بکنیم در عرض مثلا نیم ثانیه نیم سانی، یا مثلا یک چند ثانیه نیم دقیقه این خب تحقیق میدانی خارجی بوده نه اینکه مثلا به کتب خدمت شما عرض بکنم دست دوم و اینها مراجعه شده اینو میخوام عرض بکنم خدمت شما ما در بحث وحدت شخصی وجود و وحدت وجود دقیقاً این چیزی که الان خدمتتون عرض کردم که از ساحت علمی به از دقیقاً با این مسئله برخورد می یعنی مواجه شما میشوید با یک ادعایی که بعد از طرح ادعا تلاش شده برای اون دلیل آورده شده لذا عرض بکنم که اگر از صورت مسئله بگذرین چون حالا اینا خیلی بحث داره که مثلا شما در آثار خود ابن عربی مشهوده یعنی ابن عربی رو خدمت شما بخوایم خلاصه معرفی بکنیم آن چیزی که در فسوسش هست و آن چیزی که در فتوحاتش هست و بعضی کتب دیگر جز اون کتاب انشاء الدوائرش جز یک کتاب دیگری که حالا اون استنادشم معلومیست خدای آقای ابن عربی باشه شما عملا آقای ابن عربی رو اگر بخواهم خدمت شما معرفی بکنم یک انسانی شما میبینی که هیچ پایبندی علمی ندارد عملا اصلا اطلاعی نسبت به ساحت فلسف و عقل ندارد و این طبیهین های عقلی هم که شما مشاهده می تمامش تقریبا یعنی قرض میکنم این کتب اصلی ابن عربی رو که مشاهده میکنید اینها هیچ خبری نیست یعنی به سراحت تام و تمام آقای ابن عربی میگه که بله شما به اجتماع متناقضین برسید که برسید به, به اهمیاتی ندارد این واضحه تمام این طبعین های عقلی اینها بعد از آقای ابن عربی از آی قونوی گرفته و بعد یواش شواش حالا آقای ابن قونوی بحث عالم مقام و تعیون اول رو تا بعدی حالا بحث ما این نیست و اینو فقط مقدمه مقدمتاً برای این بحثی که میخواهم عرض بکنم و بحث عدله نقلی هست میخوام عرض بکنم شما تو ساحت عدله عقلی این مسحر مشهوده مشهوده که شما مشاهده می‌کنید که یک صورتی که وقتی برای شما دلعقلی تبیین شود نه به نقد برسید به افتضاح میرسید یعنی یک چیزی که اصلا سر و تهش ولو اینکه در یک نظر بدوی رعایت نشده همه اینها ناشی از این است که اول ادعا به یک دلیلی و به یک عرض بکنم جهتی مطرح شده و بعد دنبال این رفته شده که حالا ما یه دلیلی برایش بیا بده راشیم گفتم خود ابن عربی اصلا هیچ تقییدی ندارد حالا در این اشکالی ندارن کتابمونو معرفی معرفه کنم ببینید در این کتابی که ما کامل نوشیم بحث توحید عرفانی عرض بکنم که شما از طبیعی وحدت شخصی وجود گرفته تا ادله تا تاریخیش مبایث عرض بکنم عقلیش تا تمام مثال های وحدت شخصی وجود عرض بکنم تا مباعث نقلیش و روایاتی که هستش و اینها تماماً واو و واو تمامش از کتب منابع دست اول یعنی یه دونه منبع دست اول از این شاید تو کتاب ما آدرستادیم پیدا نکنیم اینو میخوام عرض بکنم که به سراحت آقای ابن عربی تعبیر میکنه که نحنا ابنا الوقت حالا من دقل مضمون میکنم، ما ابن الوقتیم اگر بحث عقل باشه عقلی صحبت بکنیم اگر بحث نمیدونم فرض بکنید خدمت شما مثلا نقل و روایات باشه نقلی حرف میزنیم و اگر بحث کشف باشه کشفی حرف میزنیم و اینو به صراحت تصریح می‌گونه به عبارات فراوانی در همین کتاب آوردیم که اصلا بحث ما این نیست میخوام عرض بکنم که به ادله نقلی هم که ما می رسیم، این قصه مجزا نیست و خارج نیست و کاملا این مسئله مشهوده یعنی یک تشتته عجیب غریبی در طرح مبنای استدلال به دله نقلی شما مشاهده می کنید و اون چیزی که واقعه مسئله هست این خیلی مهمه. ببینید اینا من فقط خلاصه یعنی شما تاریخچه مسئله وحدت شخصی وجود تاریخچه است که شما ردش رو که بزنید در تمام این اول منابعی که شکل گرفته در اون حلقه‌های ضد دینی که از اون حالا تو یونان بخوایم بررسی بکنیم از اون یونان باستان اون حلقه‌های پیزاغوری که بر ضد انبیاء الهی عملاً شکل گرفت چون خدمتی نداشته یعنی این بدوه تولد بدوه ارز بکنم تولد افکاری که اینها در ایونیا و نمیدونم فلسفه یونان بیان میکنن که اون موقع تازه فکر رو نمیدونم اندیشه شروع به تولد کرد این بعد از در زمان قبل از میلاد است که انبیاء و عدیان پخته و آثار عقلی فراوانی آمده اینها یک حلقه هایی که در مقابل عدیان الهی یواشوار شکل گرفتند خیلی پرت توش زیاد اصلا اساس و نداره که ما اساس وحدتی شخصی وجود رو در یونان اونجا میبینیم در هند باستان وقتی شما مشاهده میکنید اینه مباعث وحدتی شخصی وجود رو یعنی ارز بکنم که و حتی بعد ها غیر مباحث نمیدونم مقام زاد و تعین اول و ثانی و قص علیهاذا که متفرعات وحدت وحدت شخصی وجود هست همه رو در آثار مثلا این متفکرین هنده باستان شما مشاهده می کنید افرادی که به تعبیر خودشون دور از اندیشه های فکری و بشری بودند لذا میخوام ارز بکنم وقتی تاریخچش این گونه اینجو است ادله عقلیش اینها بعدن تلاش شده که ساختار عقلی داده شود به وحدت شخصی وجود مثال هایی زده شده که مثال ها خودش ناقد وحدت شخصی وجود هست در تمام امثله وحدت شخصی وجود مثال دریا مثال نرقص فلو فلان اینها در تمامش کسرت حقیقیست و وحدت مجازیست میرسیم به بحثی که در این ساعت انشاءالله خدمت عزیزان هستیم و بحث نقل هست در بحث ادله نقلی هم دقیقا هم گونه است. یعنی اونا من سیر توسط که به ادله نقلی رو الان شاید فرصت نماشه خدمتون می بگم چون یک ساعت خیلی دیگه فقط یک نمای رو خدمت شما میخوام مطرح بکنم و یک مبنای رو انشالله تو این جلسه خدمت شما ارائه بکنم که انشالله این مبنا رو داشته باشید خودتون این مبنا رو به هر جا بزنید جواب رو خواهید گرفت دیگه نیاز به نقد ما هم نخواهد بود. عرض بکنم خدمت شما که در بحث ادله نقلی وجود بحث عدله نقلی هم همینطور یعنی شما مثلا در آثار خود ابن عربی رو که مشاهده می کنید یعنی بحث تمثکات به نقل فقط اینو من یه اشاره مختصری به تاریخ تمثک نقلی بکنم در عدله وحدت شخصی وجود شما خیلی عرض بکنم آثار استنباتی و استنتاجی دقیقی برای استفاده وحدت شخصی وجود در آثار ابن عربی خدا شما خودتون مشاهده نمی کنید. بلکه اینها همه است که بعدها رخ داده یعنی تمسکات فراوانی می بینید خب آقای ابن عربی مثلا فرض بکنید که به روایات و آیات کرده اما می بینیم که تو آثار بعدی تمام اون تمسکات رو از هیته دلیل استدلالی نقلی برای وحدت شخصی وجود خارج کردم و کسی به اونا تمسوک نکرد چرا چون واقعا اصلا منتج نخواهد بود و تو یک نظر بدوی هم شما رو به این نتیجه نمیرساند. مثلا کارهایی است که متأخر انجام شده یواش یواش ما می‌بینیم بعضی از براهین یواش سر و صورتی به اشتداد شده و عمده عدلده نقلی که مثلا بهش تمثب میشود کرد در آثار متاخرین و نمیدونم هوزویان خودمون ما مشاهده میکنیم که خیلی به اینها سر و صورت داده شده میگم فرصت نیست من تاریخچه دقیق عرض بکنم که این آقاین متصففه رو تو این حتی جهت نقل بیان بکنیم واقعی صدهی در آمالی رو حتی برای شما مشخص بکنم ایشون کی بوده چی بوده کجا بوده چه کرده این هر فرصت نیست خدمت شما اشاره بکنیم که خب اینا همه بحث‌های تفصیلی فراوانی داره اینم من چون اجازه گرفتم عرض بکنم، همه ابحاث ما البته تو این ساعت را عرض بکنم ما تو این کانالی که داریم که مجموعه دروس ما اونجا موجوده این فقط می‌خوام بگم ذهنتون پخش نشه هر کدمیشو شما خاصی به تفصیل تورانی خیلی بحث فراوانی داره تو مجموعه ابحاث و درستی که ما توی مجموعه درست ما که تو فضای اینترنت هست تو قسمت عرفان نظریش، عرفان فلسفه اونجا تمامشو میتونید مشاهده بکنید تا انتهای حتی عرض بکنم که بحث انسان کامل عرفان یعنی تمام ساعت‌های عرفانی اونجا بحث شده چهار پنج دوره تدریس بوده یه دورش گذاشته شده بفرمایید مؤسسه مصحف فاطمی تو آپارات اونجا که مراجعه مراجعه بکنی اونجا مجموعه دروس ما به دو هزار جلسه اونجاست تو قسمت عرفان فلسفه اینجا موجوده بگذاریم وارد ادله نقلی بشیم خب آقا سوال سوال سوال کلی بریم پس دقیقاً به زبط وارد بحث خودمون بشیم که ببینیم چه خبر است سوال آقا شما عرض بکنم که در تمسک و ادعای بحث وحدت شخصی وجود اینم بازم دارم تأکید میکنم بحث وحدت شخصی وجود دقیقا همین است اگر یه وقتی آقایون فرصت بذارم ما ثابت میکنیم برای شما که نخیر آقا جان تنها تقریری که محل بحث هست در کل عرفان نظری از بد و شروعش تا انتها در اصرهازه و در متصوفه دقیقا بحث وحدت شخصی وجود هست به تعبیر ما حتی بقیه تقریرهای از وحدت شخصی وجود اسم وحدت وجود دارد و الا عملا وحدت وجود نیست خب این حالا یه بحث دیگر است که حالا الان ما ناظر به این نیست فرقی هم نمی‌کنه دیگه حالا به هر حال اینو که نقل بکنیم اون جهات دیگرش هم نقد خواهد شد خدمت شما عرض می‌کنم خب شما آقا اصل مدعاتون در بحث وحدت شخصی وجود چیه ته ته عمده خوب دقت بکنید عمده شاید وقوی ترین جهتی که ممکن اهل عرفان بهش چنگ بزنن برای این مدعا عل قاعده مسئله چی خودتون بگید عل قاعده مسئله یعنی آقایی میگه من صوفی هم رفتم ریاضت کشیدم یه آقایی میگه من عارفم مثلا تو مقامات عرفانی دو دو مثلا فرض کنید دو تا کلاس هم درس نخوندم تو آقایون دیگری شما بگید که خب اصل ادعاد و قوی ترین ادعاد و این محملی که سبب شد،, سبب شد شما به وحدت وجود قائل شدید چی هست عملا؟ شما خودتون خب علل قاعد بگید چی اینا چی میتونن بگن علال قاعده؟ علال قاعده مسئله این است که اینها ادام میکنند که بله قوی ترین محمل و محملی که ما داریم بحث شهود است ما توی ریاضت خودمون در خانقایی که داشتیم تو همین کتاب ما ذکر کردیم عیناً معلوماً بحث‌های شهودهایی که اینها گفتن که ما وحدت وجود می‌رسیم. عرض بکنم خدمت شما که متون خانقاه‌ای که بودیم مکاشفه کردیم وحدت شخصی وجود رسیدید. تو عرفان ما بودیم به هر حال آقا بله کشف و شهود و فلان اینها به وحدت شخصی وجود رسیدید. ببینید اینو اهمیت بحث نقل و اینو اینو برای این دارم عرض بکنم می‌خوام عرض بکنم خدمت شما که خب این سوال مطرح می‌شود که آقا شما که شهود کردید شما که شهود کردید خب اون آقا اینجور شهود کرده این اینجور شهود کرده اون یکم اینجوری شهود کرده من هم که الان خدمت شما نشستم ادعای شهود میکنم خیلی حالا این چون زمین های عرض بکنم خدمت شما داره پیش زمینه داره حالا ما معمولا این بحثا رو آخر بحث بحث نقلی رو مطرح می کنیم پیش زمینه داره حالا ایرادی داره الان باز دراز یکی دو دقیقه قرض می ببینید ح... اصل شهود خوب دقت بکنید من الان ادعا میتونم بکنم همین فهمی که از وحدت شخصی وجود دارم که باطل صد در درصد اینو شهوده چرا چون اصل شهود به تعبیر عرفا شهودیست است که در مقام تعین ثانی رخ میدهد پایین تر در عالم عقل رخ میده این یه اصطلاح عرفانیه فقط من می‌خوام اصلشو بگم آن شهودی که اصطلاحاً در عالم مثال رخ میداد عملا شهود نخواهد بود خیال خواهد بود درذ عرفا تعبیر میکنن به خیال منفصل خب یعنی حجیت ندارد اصلا همش همین خیال اونی که اصل و اساسه عالم عقل. اون در عالم عقل اونجا اسمش تعبیر میکنن اینها چی؟ اینها جایی است که دیگه شما در اونجا نه ماده داری نه عوارض ماده. یعنی اگر شهودی داری که شما در اون شهود تصویر میبینی، شکل میبینی، اتفاق میبینی، واقع میبینی این عملا شهودت. شهود شهود نیست چون شکل و صورت و رنگ و قصه و فلا اینا همه مربوط به عالم مثال است که تعبیر اینا این است که خیال است حالا توی بحث های عرفان عملی هم دستور داره که چجوری این بر شما حاصل بشه خب وقتی که شهود حقیقی شهودی است که خارج از اندازه خارج از ماده و عوارض ماده یعنی نه شکل داره نه عرض بکنم خدمت شما عوارض ماده مکان و زمان اینها یعنی چی یعنی عملا شهود حقیقی وحدت شخصی وجود میشواد همین که من فهمیدم وحدت شخصی وجود رو عمده ادعاهای شهودی های عربیون تو همین ساحته فرم میکنه به شاگردش خب حالا ما آقا ادعا کردیم تک تک شما عزیزانی کسی که میگه من ادعا کردم مثلا وحدت شخصی وجود درسته که میگه غلطه یکی میگه همون این همه تقریرایی که از وحدت شخصی وحدت وجود کردن هر کی میکنه خب آقا ملاک ملاک شهود چیست؟ کدامش درست است؟ آیا شهود خودش می تواند برای ما اصل باشد؟ ببینید من یه عبارتی رو ذکر بکنم برای شما که این تکلیفش روشن شود. اینی که اگر عبارت از آقای ابن عربی دارم خدمتون ارز کنم چون قصه اص و اساس و رئیس و رؤسای همه شون آقای ابن عربیست این رو میخوان در حجیت و اهمیت نقل در میزان وحدت شخصی وجود دارم خدمتتون عبارت رو میخونم ببینید تعبیر آقای ابن عربی شما میتونید حالا این رو من به از کتاب خودم رو که آدرسش آداز داشته باشید در فتوحات حالا از تو این کتابای ما توی صفحه 173 این رو مثلا کهن فتوحات جلد 3 صفحه 74 این عبارت آقای ابن عربی عبارتی کی دیدی تکلیفتون مشخص شود که آقا جان اگر میخوای استدلال بکنید چه تو جمع خصوصیه نمیدونم فرض بکنید خانقاهی تو جمع های علمی و غیر و ها اصلا اسم کشف رو دیگر نیار کشف فقط و فقط ساحتش زوغست و فحسب به این تعبیر عبارت آقای ابن عربیه به ازا خالف کشف لذی لنا کشف الانبیاء خودش اصلا مثبت این قسم هست که بله آقای کشف می تواند با دین مخالف باشه خود این عبارت این آقای یعنی که خلاص یعنی کشف حجیتی ندارد ایشون میگه اگر ما رسیدیم به این که مخالفت کرد کشفی که ما داریم با کشف انبیا چیکار باید بکنیم؟ خود آی امنربی از جمله است که خیلی بد و بری زیاد میگه فوش میده به افرادی که حتی صاحب کرامت هست میگه اینا کرامت کرامت‌هاشون رو توی بعضی از عبارات فصوص و فتوحات مخصوصاً به خصوص میگه اینا از جن به دست آوردهن از این به دست آورده خیلی داره خیلی راحت رکوپوس کردن حرفا رو میزنه لذا برای اینکه راه خودش و طریق خودش رو جلوه ببره ارل قاعده باید این مبدای حق رو بیان بکنه الله سر خودش از اول از همه میره زیر آب تو ادعا بکنی کسی دیگه ادعا نکنه من ادعای کشف کردم میگی آقا من به حقیقت محمدیه رسیدم یک کسی میگه که بی خود رسیدیم من اتباقا به حقیقت فوق محمدیه رسیدم آقا بالای حقیقت محمدیه کسی نیست کشف من اینو میگه به یک کشف من میگه که تو اشتباه میگی ما تکلیف هایشون روشن بکنیم تعبیرش اینه ازا خالف الکشف لذی کشف الانبیا اگر کشفی که ما داریم با کشف انبیا مخالفت بکند کان الرجوع الا ک کشفنبیه یعنی دین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید به دین مراجعه بکنید خلاص این یعنی اهمیت بحث نقل یعنی اساس بحث وحدت شخصیه وجود وحدت وجود بحث نقل از پس. میگه باید به مراجعه کنید و دفرامه ببینید اصلا قصه تجربه دینی آقا یه تفسیریه که یه آقای بعدها آمد ولی انبیا هیچ چیزی جدا به اسم تجربه دینی سوای کشف سوای وحی نداره. بله منظورش وحیه. بله بله بله این اصطلاح چونشون داره ساحت عرفانی داره حرف میزنه عرض بکنم که تعبیر به عرض بکنم خدمت شما که کشف میکنه. حالا من نمیدونم جفیش شما چهجوری نشسته بودیم اینجا بخواستیم میم بالا حساب شما رو برسیم بحث زن رو میخواستم قشنگ مشخص بکنم که آقا تمام بحث تونه دیدیم ما بحث قطعه حالا ما تو بحثای خارج فقه خارج اصول تایم کانال ما موجود حسابی تکلیفشو روشن کردیم سرجاش حالا بگید حالا ما احتیاطاً قرار شده نماز مغرب رو بخونیم بله بله بار. نه, نه ما حواسمون به ساعت هستیم، دیگه حواست به ساعت هست آره, آره. خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید شونه و علمنا ان صاحب ال... صاحب ذلک الكشف قد ترى عليه خلل بكونه زاد علا کشف نوعا من التاويل بفكره میگه فهمیدیم و میفهمیم اون آقایی که مکاشفه کرده قاطی پاتی کرد راحت از جیب خودش اضافه کرده به کشف برای اینکه خودش نفهمیده این تعبیر آقایی ابن میگه اضافه کرده، نوع تحویل به فکری از فکر خودش اضافه کرده فلم یقفمع کشفهی کساه بر رؤیا فا این کشفه او صحیح و اخبر اما رآ و یختعال و یقعال خطع فالتحبیل آقای ابن عربی اینجا فقط یه زبلی به خرج میده میگه که زبلی که خاصیت نداره، میگه حالا این آقای صوفیی که داره میگه من مکاشفه کردم درست میگه مکاشفه کرده اما تو یه جاهای دیگه خودش میگه نقد نقد میگ میگه هرچی دیده جندی بوده مثلا ما اینا رو مفصل توضیح دادیم ما ریز به ریزش رو توضیح دادیم برده بعد خدمت شما برده خدمت محتمه هست عرض بکنم خدمت شما که حواسمون جمع حسابی عرض رو به ساعت بعد بزرگواله خدمت شما عرض بکنم که این تعبیر رو ایشون داره میگه برای اون آقایی که مکاشفه کرده اینجا توی این اوار. میگه. اینی که میگه مفسره درسته اینو شما ایراد ندارید. این تفسیرش از کشفش. این گزارشی که از کشفش داره میده. این فهمی که از کشفش دارد اشتباه است. بعد تعبیر اینه که به هر حال خلاص و مهمش اینه که میگه که اگر اشتباهی رخ داد، اختلافی رخ داد، مبنا است؟ مبنا این است که به دین شما مراجعه بکنی و اس اساس کل عرفان کمیکو یاد مکاشفه هست ایشون حواله میده است و اساسش دین است و تعالیم انبیا الهی یک یه آدرس دیگه هم بگم وارد باز بحث ریستر حجیت نقل نزد آقایون عارفا بشیم ببینید آدرس رو برای شما یادداشت کنید در فتوحات جلد یک صفحه دویست و هشتاد بله ببخشید آدرسش رو اینجا بله ظاهرا در فتوحات جلد سه صفحه هفت حل القاعده هست حالا آدرس دارم. حالا این یکیش تا ببین اشون تعبیرش حالا توی بعد از اینکه مفصل بحث عرض بکنم در ادامه در ادامه همین عبارت تعبیرش اینه که و امل میزان الشرعی تو همین عبارات که حالا میگه میزان شرعیت میگه فهاو ان الله ازا عطا که من العلوم الالهی الا من غیره میگه ورا منظور علوم الهی نه علومی که از جن و من و غیرش به دست میاد فاند حالا نعتبر الغير فی هاذ المیزان خاص میگه ما غیر رو قبول ندیم فنظر فشر ان عالمین به اگر مشتهدی خودت برو به شر نگاه کن و ایلنا و ایلنا سألنا کی فلاسفه سألنا کی عرفا سألنا کی متکلمین سألنا المحدثین من علماء الشراعه برو دقیقا اونی که برای شما روایت میخونه برو از اون سوال بپرس. مقدر ما میگیم میزان ما میزان است در مکاشفات از جمله وحدت شخصی وجود و وحدت وجود شما دقیقا منظورمون روایت است برو سراغ محدثین لا نسأل اه اهل الرأی سراغ اهل نری یا؟ باز دوباره تحکید می کنیم که شما یکتی مثلا اشتباه نفهمید فنقول ما میریم سراغ فل... فیلسوفی آقای فلانی بعد روایت کلی کتاب مثلا روایی فلان اینا نوشته ازش می اینه؟ نه شما میگه دقیقتر اگه سراغ آقای فلانی هم میری بگو دقیقا روایتشو بر من بخون فنقول الله هم حل هم نه رو فقط پس سراغی مشتهد بگو نظر دین چه هست بگو نفس روایت رو برای من بخون این, این حرف آقای ابن عربی ها هل رویتوم ان احد من الرسل انه قال ان الله كذا و کذا؟ فا نه اگر روایت زکرم فا رو به ما علم تا با اون کشفت مقایسه بکن طب ما غیر لک و علم انک وارث از ذلک نبی فی تلك اگه درست بگو بگو الحمدلله من شدم وارث اون پیغمبر اون پیغمبر با دینش به این رسید منم با کشفم به اون مسئله رسیدم خب شد یا نگاه کن بهش بگو اوین زرا هل قرآن علیها القران قران بهش نمیگی میگه روایت قرآن قران, قرآن. وقتمون زیغه براد بحث بشه خب این اهمیت شرع در بحث کل نظام عرفانه نظری کل نظام صوفیانه و این تعبیرم دارم میخواد اینجا خدمتتون عرض بکنم آقا جان ما اینجا قاهازریم ثابتش بکنیم صد در صد شما همین ادعا رو اینجا خدمتون عرض بکنم چرا این بحث وحدت شخصی وجود نظام ارفان نظری اهمیت دارد شما هر ادعای هر ادعا هر تعلیمی از تعالیم فرق انحرافی این عالم همین آنی که چیزی آقا جان شما بسم الله شما این رو برای ما بگو من اینش رو تو عرفان نظری به شما نشان خواهم داد یعنی اگر این رو اینجا داریم نقل می کنیم نقد می کنیم این اهمیتی من سی فصلی اونجا می شده داریم نقد می کنیم کل ساختار تمام فرقه های این عالم رو شما می پوشنیم می از بین میبری دونه بدونش رو خدمتون توم خب این ساحت عرض بکنم حجیت و اهمیت میزان نقل ببینید پس جایگاه نقل اساسی ترینه درخت کل ارفان نظام صوفیانه به تعبیر آقای ابن عربی که رئیس و رؤسای اینها هست اینه که شر روایات شرعی و آیات قرآن خب آقا سؤال دو فهمیدیم که باید به شرع مراجعه سؤال دو خب آقا جان چه جوری ما از شعر استفاده بکنیم خب یه روایتی آمده. آقای مشتری عق بقال اینجوری معنی نمی‌داشم خب آقای فرض فلان کسی که دو کلاس دانشگاه خونده اینجوری معنی نمی‌داشم اونی که ندان فیلسوف اینجوری معنی نمی‌داشم اونی که صوفیه اینطوری معنی نمی‌داشم سنیه اینجوری معنی نمی‌داشم متکلمی اینجوری معنی میکنه فرض بکنید تو آقایون اهل شرم یک دو سه 5 پنیشتر اینجوری من داشت خب کدومش حجت؟ ملاک حجیت نقل خب این آقای ابن عربی عرل قاعد مواجهه با این جهت هم دارد شما وقتی به ذهن میاد آقا چقدر مثلا متدنگیم فرض کنید بوده این دلش سوخته مثلا خدمت شما عرض بکنم من نمیدونم این اینجا بگم یا نگم آقا ما تو مجموعه ابحاثمون که ثابت کردیم تا انتهاش یعنی انتهاش عملا عرض بکنم سه جلد از این کتاب در میاد یعنی این بحث توحید عرفانی بحث بحثه شخصی وجود جلد دوم جهان بینی عرفانیه که البته حالا نشد سومیش هم بحثه عرض بکنم که ولایت عرفانی ببین تو آخرش من خدمت خدمتتون عرض بکنم والله بد بگم یه ذره آخرش شما ما یه ادله ارائه دادم خدمت شما که احتمال میدیم که اصلا آقای نروی مسلمان نباشه احتمال زیاد آقا اصلا راسن مسی حالا ما اینو خیلی یک دو سه چهار پنج تا دلیل اونجا با با آدرس ذکر کردیم کاری نداره میخوام خوام که حالا اینجا یه وقتی شما میگید که آقا دلتون برای آقا بسوزه این آقا خدمت شما عرض بکنم که چقدر متدین شده بر ما مثلا داره بر ما ملاک وجیهت دینی رو ذکر کنه خودش مشکل داره چون الان آقای ابن عربی میخواد خواد روایت بیاره قونوی میخواد خواد بیاره نمیدونم دونم و کاشانی و خدمت شما عرض بکنم بعد‌ها قیصری و تا برسه به آقای جامی و فلان اینا. اینا چون هر کدومشون یک ساعتی از بحث رو دارن. ما چکر خیلی منزه هر کدومش یک ساعتی از بحث رو دارن یعنی مثلا شما آثار عالم عقل به پایین و دیگه تو آثار جامی به بعد بود ببینید تو یا خبری نیست خیلی خب اینا یه تمسکات نقدی دارن خب این آقا که مطرح بکنه کلی خدمت شما عرض بکنم که این منتقد دارد تو همون ساحته صوفیانه خودش تو همون ساحته عقلی خودش بعضا فلاسفه هستند، علمای شرایع هستند، دیگران هستند. لذا باید این میزان رو ارائه بدهد. اینا باز یک جنبه دیگه براتون باز میکنم بحث رو ببینید اصلا ف ف ف بررسی خود زمان ابن عربی خیلی فوق است خیلی فوق است. اصلا ابن عربی کجا بوده کجا بوده حرفا رو از کجا گرفته دیگه خیلی نمیخوام باز کنم چه اتفاقات و بلاهای یه وقتی سر بعضی ها ممکنه اومده باشه که آقای ابن عربی رشد بکنه اون آقا زنده بود چه واسه این آقا نمیشد رشد بکنه اینا بحثه خب، این میزان ملاک حجیت مند، خب آقا ما تو الان میخوایم متن رو به روایت تمثب بکنیم در بحث وحدت شخصی وجود، در بحث کل نظام عرفان به چیش باید تمثب کنیم؟ آقای ابن عربی خلاصه خیلی رک و کنده سریح، تو ج... کلی عبارت، بی بر برگرد میگه ملاک، ظاهره روایات، ظاهر قرآن هست به همون شکلی که عوام مردم میفهمند دقیقا ببینید چند تا عبارت خدمت شما بخونم ببینید تابیر اینه که عبارت حالا تو این مسئله زیاده و ما اهل تعویل این حالا این عبارتشون در فتوحات جلد دو صفحه چهارصد هفت حالا آقای ابن عربی خیلی فوش میده این مجموع عبارتی که میخوام بعضی هاشو به فلاصفه فوش اول و آخر رو میده و اهل تعویل اونایی که تعویل میکنن بحثای عرفانی رو خیلی بد و بیران میگه و خیلی اما خوب خودش اوستاس دیگه اوستاس یعنی شما وارد مد که میشی یک خلاصه رتب و یابسا و شرق و غرب عالم رو به هم چسبوندنهایی مشاهده میکنی که اصلا عجیب غریب و خب توی بحث نظری، ساحت نظری باید آدم درست حرف بزنه این یک راهبرد آقای راهبرد کلیه این راهبرد شما در بررسی روش متصوفه کاملا مشاهده چارچو و کلیات حرف خیلی درست میگه حرف رو درست بگو تو عمل قاطی پاتی برو شما کسی نمیفهمه نهایتش میگه اون آقایی که اونجا برای ما انقدر متشره بود حتما این هم موافقهش این راه برده آیا ابن عربی هم اینجا مستثنیه برای اینجا خیلی درست حسابیه ببینید تعبیر این و اما اهل تعویل فقط ها رو اونایی که تعویل میکنن متن رو فقط ها رو نه حیران شدن ولا صابو اصلا مصاب نیستن اینه حالا ما خدمت شما میخوام ارز بکنم که تمام تمام ای که روایاتی که آیات قرآنی که ارز بکنم مخصوصا معاصرین ما به وحدت شخصی برای وحدت وجود شخصی تمثق کردن جزوه افتزاه ترینه جنبه های تعویل خیلی یعنی من خدمت شما عرض بکنم از ساحت نقد بدوره، ساحت افتزاهه حالا چند تاشو انشالله این جلسه خدمت نه از بود بلا اصاب و اعنی فی خوضهم فی التعلیف، فی التعویل، فی انواق حتی اگر اینها به علمم برسند فقدر تکب و محرمن علیه حرام انجام داده یسالون عنه یوملق، یسالون عنه یوملق روزی قیمون از اینا سوال برسند خود کردی کلام خدا رو تو تعویل کردی ببینید میگه معرفت و علمش ببینید تعبیل اینده که توی عنوانی داره ایشون میگه معرفت و علم شار المترجم عن الله اللذی امر امرنا بالایمان به محکمه و متشابه و ناول نقب الجميع ما جابه تعبیر ایند که اون چیزی که خداوند متعال به ما گفته که این محکم من قرآن من تو باید بهش عمل کنی میگه ف اناول ناشئ بن ان سال که الا انه مرات المتکلمه بهی فی نفس الامر اگر تو گفتی که متکلم فلواقع نظرش این بوده نمی به ما اینو بگن نمیشده بگن پل واقعا وقتی میخواست اینو بگه نظرش این بوده حالا میگم دیگه تمام عدله نقد این رقمی است دیگه اگر گفته که حالا نمیخوام بگم زهیته موچ نحدو اقرباء الیه من حبل الوری من نزدیک یعنی خود تیم دیگه تحویل بود میگه اگه همشه حرف فیروزدی زال عنا درجه ایمان اصلی مؤمن نیستید ف انا حکم علال خبر تو ورداشتی دلیل خودتو بر, ح... بر خبر حاکم کردی ف یعطل حکم ف حکم ایمان حکم ایمان دیگه تعطیل میشه خیلی عبارت, عبارت فرافی این فی عبادهی میگه که ببین قادزه خیلی جالبه توی خدمت شما حذب کنم همون فتوحات ظاهران جلد دو صفحه 200 جلد سه صفحه دویست و پنجاه و هفت میگه توی میان بندگان خدا کسانی هستن من حروم ال کشف و ال ایمان کسانی هستن که هم کشف حرام شده یعنی محرومان هم ایمان یعنی اینا نه تنها به فلسفه داره پشت میده اینی که ارز میکنم آقای ابن عربی خیلی بیاره خیلی میگم بعدی ها مثل قونوی دیدن خیلی افتضاحه یعنی اصلا اینقدر ایشون بیاری داره مثلا متناقض متزاد قاطی قاتی پاتی داره ایشون میگه جمع بین و این باشه که باشه مهم نیست بعدی ها آمدن سر و سامون دادن ببینید ایشون اینجا هم خیلی بهم. میگه که اینها کیا هستن من هر اومال کشف و ایمان و همال اقلا و عبید الافکار اونایی که بندگان فکر خودشون هستن الواقفون مل اعتبار حرفش چیه؟ حرفش اینه ببین عمده حرفش اینه میگه چرا انگه حالا داره به اینا و بعد و بیران میگی؟ میگه فجازومن از ظاهر الال باطن اینا چرا انقدر بیدینن؟ چون ظاهر متون دینی رو ول کردن سراغ باطن رفتن ظاهر، ظاهری که خدا القا داده، ملقا کرده به کی؟ به مردمی که هستن دیگه متعبیر میکنیم نزید اصالت و ظهور آقا حجیت اصالت و هم به قط میرسه آقای به قط میرسه بعدا آدرس بحث خارج و شما گوش کنیم خب تمام مبارس حجه اینا به قط میرسه نه زن توضیح دارد چه هست خب آره این خب خدمت شما عرض بکنم که فجاز اومن از ظاه میگه و بیای من به خاطر این است که اینها ظاهر را ولی کن اذعان سوال کرد. اینجا بود از ظاهر دقیق تر بذار حرف بزنم. باز فتوهات همون آدرس صحران جلد دو صفحه 309. ما به عسل الله و رسوله. آقا ما خود اهل شدیم. آقا ما نمی شما دفاع می کردید یا داشتی نقد می کردید. البته آقا داشتن دفاع می کردند. ما حالا یه ذره کارهاشون شدیم حالا خیلی عصبانی از, از بابت چیز دفاعات. خب ما باعث الله و رسولن الا به قومه آقا خیلی راحت تر حرف بزنم خداوند متعال دقیقا به لسان قومش تر حرف نیست خدا هیچ پیغمبری رو نفرستادیم اگر به لسان قومه لِيُبَيِّنَ اللَّهُمَّا ما زَلَيْلَيْهِمْ لِيَفْ هَمُوْ تا اینکه بفهمن باز عرض بکنم خدمت شما خیلی عبارت دارد ایشون بخوام خدمت شما عرض بکنم که دیگه مبارات فراوانیست اهل ایمانه و هم المقلده الذین قلد الانبیاء و الرسل، پی ما اخبرو بهی ان الحق دقیقا هرچی پیغمبر فهمیده ما همونید فهمیم لا من قلد اصحاب الافکار و المتعولین الاخبار اخوال تعبیر میبرن بر خودشون به هم لها ارا عدلت همه میگه از جای دیگری یه مدلولی رو ثابت کرده میگه الانم این رقای قرآن این روایت ولابد دارد اون مدلول من رو میگوید اون آقایی که ادعا کرده بود که کل قرآن داره وحدت شخصی وجود رو داد میزنه ما خدمت شما اثبات اون کل قرآن داره نقد وحدت شخصی وجود داد میزنه اینا نمیدونم خدمت شما عرض می‌کنم هوا از دهنشون درآمد ما نقد کردیم و یعنی اینجوری نیست که استثناء کردیم، هر چی آیه و روایت اووردن نقد کردیم تازه کلی اضافه هم آوردین حالا اینا سر جاش نظام میخوام می‌خوام عرض بکنم بگذریم از بحث که از این بحث پس اون مبنا در روا... عدالت این مساله زیاده خب پس مبنا چی شد مبنا اینه که خیلی قشنگ تا اینجا موافق همون مثل هم دیگه اگه صوفی اومد بگیم به تا اینجا رفیقین بحثی که نداریم اولا اصل و, اصل و اساس نقل است، قران است، روایتش دو. چه جوری به قرآن روایت؟ دقیقا اصالت و ظهور. دقیقاً اون چیزی که مدلول دارد به ما میگوید نه به از جای دیگری ثابت کرده باشیم، بگیم این داره همون رو میگویید. خب، وقتی که این شد، خیلی برای ما مهم بود تو این جلسه اینو برای شده مختصراً خدمت شما عرض بکنم. غیر از این هم آقا جان هیچ جور دیگه حرف زد. فرض دیگری ندارد چرا چون اگر بخواید شما یک پایه ثابتی ثابتی در حجیت نقل نداشته باشید دیگه اصلا کل بحث تقت هم از تو که به نقل از بمیرابده هرکی یجوع معنا میکنه لذا لازمه که یک پایه ثابتی داشته باشیم که خود آقای ابن عربی و آقایون تمام این آقایون عرفا و تمام متصوفه ای که عرض بکنم ظاهر رو لا اقل سعی کردن رعایت بکنن قائل به این مساله هستند ولی اصلا انسان نمی تواند حرف بزند شما اگر این رو قبول نداشته باشی هر چی دوست داشتی بکنه. هر چی داشتی بگو که نمیدونم یک مبنای مثلا فرض بکنی فیزیکی رو بیان بکنم میگم مبنای فیزیکی یعنی ماست تو خونه من ترشی داره دلت میاد ردش کن میتونی ردش کو نردش کو تو پای ثابتی در حجیت نقل نداشته باشی لذا اینی که میخواد تمسک بکنه یا اصلا تمسک نمیکنه نمیاد تو ساعت نقل اگه نیت تو ساعت نقل مشکلش جای دیگه است اصل کشمشونه میتونه ثابت حالا که اومده باید یک میزان حجیت داشته باشه اون حجیت ظاهرش خب وارد بعضی از عدله نقدی بشیم ببینید شما خدمت شما عرض بکنم که فضای بحث چگونه است ببینید مجموعه اینها از ادله نقلی دارند خب ما خدمتشون شما اعرض بعضیشون دست دسته اینها رو اشاره کردیم بعضیشون دونه دونه این در قالب دسته قرار نمیگیرند و بعضیشون در قالب دونه دونند. ببینید مثلا خدمت شما ما اعرض بکنم که آیات قرب هست مجموع آیاتی که خداوند متعال سخن از نزدیکی میکنم شما نزدیک هست. حالا بعضی شورا اشاره میکنیم خدمتون هر چیش رو شو شد چون خیلی دیگه فرصت نداریم گفتن تا 50 دقیقه 20 دقیقه فکر برای سوال پرسش تا نیم جمع کنیم برای؟ تا نیم جمعش میکنم. تا هفت و ده دقیقه ما زمان داریم آه، تا هفت و ده دقیقه ده زمان ده ده داریم؟ ده آه، و پنجا دقیقه تا و پنجا دقیقه کلامه هزتاری استفاده دقیقه آه، پس ببین مجموعه آیات قرب هست مجموعه آیاتی که داریم میگه که ما به شما نزدیک هستیم آیات هست از بکنم خدمت شما از ب... اینا معمولا آیات کلی بحث هست و نمیدونم بعضی از آیات جزئی بحث هست و بعضی از روایات بحث هست خوب دقت کنید بعضی از روایات بحث هست و خدمت شما ارز بکنم بعضی باشم هواشی بحث هواشی بحث نقله یعنی عملاً بحث خدمت شما رو بکنم که نه آیه هست نه روایه هست بیشتر هاشیه سازی بحثی که الان اشاره می کنم همه این حال بازشون انشالله تو این فرصت خدمتون عرض بکنم عملا عمل فکر کنم من نگفته خودتون می اینها رو نقد بکنید حالا چون میزان دستتون اومده تو هر کدومش دست بذارید هیچ کدومشون نه مطابق منطوق آیه است نه مدلول آیه و بلکه عرض بکنم ابعد و تعویلاته یعنی شما میگه آقا من بخوام تعویلم بکنم قشنگتر از تو تعویل میکنم تعویلم بخوام بکنی وقتی شخصی وجود نمیچسبه خیلاش این شکلی من هاشیه آخریش رو اشاره بکنم که جز به هواشی نقل تا وارد عرض بکنم که چون خیلی اصلا ورود بحث نقل پیدا نمی دو بحث هواشی عرض بکنم خدمتش اون حاشیه‌ای که حالا من تو آخرم خیلی شواهد فراوانی حالا تو این کتاب خودم آخرشام خیلی شواهد فراوانی برای ذکر کردیم اون که ازشام تعبیر میکنیم هاشیه میگن که آقا جان نگاه کنید اینو حاشیه هم بگم چون شاید مهمتر باشه یعنی میگم الان کلیات نقد و نقد نقل رو یاد گرفتیم باز خدمتون خدمتتون اون حاشیه مهمش اینه که ببینید خیلی تعبیر از اسرار میکنند میگن این خیلی الا عبارات هست دیگه میگن اسرار اهل بید این گونه بوده ما تو همین کتاب اون عبارات آقای محمد تهرانی اول کتاب آوردیم دیگه میگه تمام اون خونهایی که ریخته شد همه به خاطر وحدت شخصی هر کی گفت اومد پیغمبری اومد گفت لا اله به خاطر وحدت شخصی و, و, و, و از این جور چیزا اشکان اسمای جوادی رو برد قوی جوادی مثلا ابادت آوردی آوردیم میگه اصلا شما بگی و غیر وحدت وجود بگید کافره کافری ای آورد جوادی ای جوادین قینا آورد شو آوردیم برای تعبیرش اینه که حالا بعد خدمتتون از بخششگاه هست البته من تا آخرش منبر را همینجور براتون پیداش میکنم با برای همین دم هم دست داره من خدمتتون ارز بکنم که به عربی آمد بسم الله الرحمن الرحیم در تمهید و جلد یک صفحه پنجاه و شش مسئله وحدت وجود به این معنای امین غرفانیش که از گزند هرگون شرک منزه بوده بلکه کسلت وجود مقابل آن شرک محسوب می شود دیگه داری عزیزم یا نه؟ خب ارز بکنم خب این حرفی که بحث اسرار اهل بید آقا وحدت وجود رو اصلا نمیشد گفت اینقدر مسئله سنگی اگه میشه گفت بگن نظر انبیا الهی باید میبودن جون میکندن فلان میکندن فلان میگردن تا خدمت شما که مردم مثلا حالا بیان خدای رو تهش حالا مثلا اگه جوجه‌ها واشکه باز بکشن کنار میگن حسبیه هواشکه در گوشت بگن همینایی که گفتم کشک بود خودت خدایی اصلا وقتش شخصی وجود خب سوال آقا جون من اینا بحث تاریخش مفصل حالا ما ته بحث اومدیم دیگه خدمت شما دیگه مثلا اینا رو حواله به همون عزیزانی که مطرح کردن آقا وقتت شخصی شما وجود رو وقتی تو بحث تاریخش هم شما نگاه می‌کنین جزو ابتدایی‌ترین اندیشه‌های بشریه یعنی شما هر کسی تو هر جا از ساعت عقل دورش دور بوده، این وقتا شخصی رفت. گفته خب، ساعت آقا جان، اگر پیغمبر می آمد، خوب دقت کنی پیغمبر، این همه جون کندن این همه نمیدونن بعضیا بعضی رو پشته شدن، فقر کشیدن، شکنجه دیدن، فلان. پیغمبر از همون اول می آمد گفتش که عزیز من تو داریم میگی که این بوته خداست یه خود فکرت رو باز کن بهه خداست خودت خدای اونم خداست اینم خدا همهمون خدایم بلکه همانون الکی خداایی واسه همون از بکنم خودمونمعلکیم حالا تغییر وح شخصی بیم ما خیلی رات آ منبی سرشه یه دونه همون خداست خود خود خدا هممون همون همون خداایی اونا نمیگفتم گفتفتم به او کجا بودی تو تا حالا ما میخواستیم مثلا فکن کنیم، ریاست کنیمیم بتر رو بکنم خدا خود خودم الان هستن ز قشین شد مثلا آین سوفه بگه دست در نکنه عزیزم من, من خنگ بودم اومدم بگم اصلا فلانی فلانی خودم خودم به رو خودم بپرستی چه قشنگ و یکی از این آقایون آ جای پاکتل اینو نقد می میگفتن که گفتن نشسته بودم یکی از این ها این طرف نشسته بود یکی از این عرفانی این طرف نشسته بود گفت صوفیه آقایون یکی رو گرفت واسه بحث های شخصی بود این یکی گفتو دیگه عجب پدر سوخته هستی یعنی. که من می‌کنم لاقل قطفم خداست، تو میگی که مو خداییم خب <تصفيق> این عرض بکنم که برای اونایی که دنبال ریاست بودن و برای عموم مردم که بهتر بود که چجور سختی فهمی سخت آیا سختی فهم این نیست که بگن که یک خدای نادیده‌ای که نمیدونم منظه از جمعی صفات هست با این توصیفات این خداست؟ انقدر رسول الله اهل به جون بکندن اینو ثابتش کنند با هزار تا برهان بعد بگن همه همش, همش خودت بودی همه برهان رد کنن خب این خنده دار آقا این که جزو اسرار اهل بیت بود اینا میشواد جزو هواشیه نقلی یعنی بعضی‌ها به نقل تمسک نمی‌کنن واسه حواشی مثلا خب من چند تا آیه رو تو این وقتی که هست این چند تا قشنگشون تو گردن کلफ्टी که بهش تمسک کردن رو خدمت شما اشاره بکنم و یه مشاهده اجماری داشته باشیم در این که خدمت شما ارز بکنم که ببینید چجوری این اینها اصلا بعضا نه تنها که به ساحت حتی نقل و ظاهر نقل تمسک نکردند و فلواقع الواقع اینها برز خدمت شما ارز بکنم که تأوید نکردم بلکه اصلا اشتباه بعضا متن و ادبی وجود دارد حالا من چند تاشو مثلا میکنم تو این موقع ببین یکی ای اولین آیه‌ای که خیلی خدمت شما تو این مختصر الان بنز به بنظر من شما هر کدومشو بخواید بگید ما مفصل به یک دو سه چهار پنج تا 10 تا دلیل نقدش میکنیم معمولا نقداو نمی شکلیه دی حالا تو این کتاب ما هم شما ببینید معمولا نمی شکسته ببینید یکی از آیاتی که خیلی براشون مهمه من چند تاشو فقط اشاره میکنم که شما ببینید که اینی که عرض میکنم. تا چه یکیش این که میکنم اون ساعت افتضاح تا چند اندازه است یکیشون اولین آیه که آیه 3 سوره حدید خب خیلی آیه مهم میسته در استدلال وحدت شخصی وجوده اگر عزیزان تو این اسنا آیه دیگه براشون مهم بود چون ملاک نقد رو خدمتون الان عرض کردم دیگه فقط میمونه بحث جزیات نقد بفرمایید که ما همون رو بپردازیم چون زیاد من الان به سلیقه خودم بعضیشون انتخاب میکنم کنم ببینید یکی از این آیات آیه 3 سوره کدام آیه سوال اوله و الآخر و, و ظاهرو، و الباطن خدا اول اینو همین آقایی که چه تعبیری کنم جسارت نشه همین آقایی که بعضی خیلی علاقه مندن بهشون حالا ما هم آقا اینم خدمت رو ارز بکنم ساحت علمی و ساحت اخلاقی دینی نزد ما خودمان یکی که اینجا خدمت هستی متفاوت ها. بعض از آقایانو فقط نقد علمی دارم و آدم خوب متدیه، خدا خیلیش بده. اشتباه کرد که سر جاش. یعنی خیلی به ساحت های دیگه نمیخوام سرایت بدم. اصلا این روش رو نداریم که همینطوری که فرمودن که روش این هم تکفیری و قصوا نه اینجور امور این خبرها نیست. ببین اینا بعد تو عالسنتی بعض از همین آقایونی که برال خیلی شهرت حسابیم تو عصر ما پیدا کردن اینها در اصل هوا اول و آخر رو و ظاهر و باطن خب اصطلاح چیه میگن نیا راحت خدا داره میگه که اول خداست آخر خداست ظاهر خداست باطن خداست خلاص شد رفت همه چی خداست وحدت شخصیه وجود از این بهتر شما میخلید خیلی راحت ما اینو خیلی نقدش کردیم من اینجا فقط یه نقدشو بگم نقد یک دو سه گفت نقدامونه میتونیم هر کنیش دوستاشی عزیزم ایسا اشکال داد. این نخ... نخواستی این یکی، نخواستی این یکی، نخواستی این یکی خیلی خب من یه دویش رو کنم ببینم عزیز من خب. از این که خداوند متعال بیای میکنم اول اول و الاخر و ظاهر و الباطن این جور معنا کردی که یعنی اول خداست، آخر خداست باطن خداست، ظاهران خب عزیز من من الان عرض بکنم که شما رو بیارم جلوتر چرا این صفات رو اصلا به خدا نسبت میده؟ حالا نگم خودم که داستان براتون با آقا چرا اصلاً قایل به وحدت شخصی خودم جهی قائل به وحدت شخصی این آقا همه عالم آقاس چرا؟ چون شما به آقا جایی که این میگید که هوال هو عالم یعنی که تنها عالم این عالم اینه. هووال قوی، هنی تنها قوی این آلم این هووال مثلا دمیدونم پولدار آقا پول ازشون برای معصر بگیرید دو تنها پولدار این عالمین. این آقا شما از این عبارت من که ما صبح تا شب برای افراد مختلف صفت رو به اون فرد نسبت میدهیم تو کدوم شما استفاده هست میبرید؟ عزیز من شما مثل که متن عربی ادبی رو اصلا یادت رفته صبح تا شب تو تمام کتب تو خدا آیات قرآن داره صفات فلانه اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود چرا استفاده کردی؟ یعنی تنها اون اینه این همه در مورد نمیدونم اجازات این آقای نوالبا غیره صفات برای همدیگه ردیمه یعنی تنها به تعبیری که اگر آیه اینطوری بود ال اول و هو و آخر و هو و ظاهر و هو و باطن و هو شاید چون شاید اینی که اینم بگی ما پنج تا نقد دیگه از جیب اون در میارم خدمتون بگیم حالا که نایمده حالا وقت طرف نکنه اینم میگفتی من بهتون میگفتم بازم اشتباه برنا کرد خب عرض بکنم مگه آیه اینطوریه اینه که خب خو... خو... خو... اول و آخر که خب واضحه اول و آخر واضحه خدا اوله حج آخره عرض بکنم که حالا هر جور که شما دوست داشتیم معنا بکن اط اینکه شما بخوایی تعبیرم بکنی به هیچ جور به وحدت شخصی نمیچسبه. آقا شما برو به ماسفروشی سر کوچه بچسبون به وحدت شخصی نمیچسبه. چون هول آخر یعنی اثبات غیر. یعنی یه این طرفی هست اون طرفی هست این بعد از اون وحدت شخصی وجود یه نفی غیر. کجای شما؟ خب حالا معنای آیه شریفه چی میشواد؟ این است خداوند او اول از خبشه کلام اونطور اخر از هر جو دوست داشتین برای ما مهم نیست برای ایناام خیلی مهم نیست اون دو تا فراز بعدی مهمه بیشتر ده. از ظاهر و ظاهر دارد باطن هو رو خدا ظهور دارد هو الباطن خدا بوتون دارد خلاص شد رفت این معنای سریس قایه شریف از غیر از این بخوای حرف بزنی دو چهار فوش شدید آقای ابن عربی میشوی همینجا این عباراتی که خونده. میگه تو مؤمن نیستی بدبختی بیچاره هرچی خاص فوش این یک ببینید یکی از تله گنده تین آیاتی که دارن بهش تمسک میکنن همین آیات قرب هست که اصلا اشتباه غلطه یعنی اشتباه ادبیه غلطه ببینید یکی دیگه از حالا آیاتی که بخوام خدمت شما عرض بکنم که ببینید مثلا باز بحث حالا از جمله آیاتی که اسم میام دسته های مختلفی است که خدمت شما عرض بکنم که میتوانید شما مثلا به همین آیات قرب تمسک بکنید اینا رو متاسفانه این کارا رو انجام دادن میگم چون نمیخوام به ساحتهای دیگری خدمت شما معرض بکنم که یه وقتی تعرض بشه خیلی بیشتر باز نمیکنم دیگه همین آقایون بعضا دوروری های خودمون که دیگه بهبه و چهچه و تلویزون هم پر و هم الهم در ببین حالا بسرن آیات غرب و نقد خلقن الانسان و نعلم و ما تو وصف نفسه سوره مبارکه واقعه و نحن اقرب الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به خداوند متعال نزدیکتر کیفیت استدلال چجوریه ببینید اصلا الان با این توضیح ما باید خودتون من استدلالو مطرح میکنم اصلا خودتون باید نقدو بکنید خب خداوند متعال میگوید که من به شما از رگ گردن نزدیکترم. ترم خب خداوند متعال که قرب و برد مکانی که نداری خب وقتی که خداوند متعال قرب و برد مکانی نداره ما نمیتونیم نزدیک کنیم یعنی نزدیک یعنی واقعا نزدیک ترم. پس چی بگیم؟ یعنی که خودتم خودت تمام این عرض بکنم تمام این آیات و روایاتی که بهش تمسک شده توی این کتابی که متاسفانه کتاب العاده زعیفی هم هست حتی در طبیعین اما خشکلکن قشنگی داشته یعنی خوب سر و سامون داده این کتاب ارفان نظری که الان توی مؤسسات حوزویه داره تدریس میشو اینها تمام اینها بهش تمسک شد و خیلی گردنم بالا و ببینید چقدر مثلا آقایی که وحدت شخصی رو قبول نیستن، چقدر چقد بدینن چقدر فلان فلان فلان با اینا شروع هم فوش دادن خب حالا که وقت خدا نمیشه بگی که من یعنی نزدیک‌تر مثلا خودتم هو اردن نقد کنه با این مبنایی که خدمتتون از کردم خب آجان ما اینم همینطور اینم 4 5 تا نقد زیاد داریم ببینید 1 2 تا نقد اشاره کردیم یعنی از زبایه های مختلف نقد کردیم خلاصه خدمتتون رو نرز بکنم ببینید خب سوال آقا جان پس شما در اینجا اول بنامون قرارمون این بود که شما تعویل نبرید ملاک حجیت متن چه هست این چو ظاهرش خب در اینجا شما قرب به تعبیر, تعبیر خودتون حالا مجموعه آیات قرب دیگه شما در این آیات قرب به تعبیر خودتون مجموعه آیات قرب رو که نتوانیشید معنا بکنید یک قرب معنا ندار خلاص شده رفت. دیگه باید دهنتون رو ببندید نه شد معنا کن نه معنا کن نعنا نکن بلکه قسم از تعباس خوردی کرد، معنا بکنید. که ایش هایی که ما نمیفهمیم. فهمیم و اگه صرف اینکه معنا بکنیم باید الا و لابد یه چیزی بچسبونیمش خلاص شروع دو نهایش هم میخوای تعبیلو بکنیم میخوای رو. حالا من این رو اینجا جه داره اشاره بکنم ببینید عزیز من اگر شما قائله حالا تمسک به وحدت شخصی وجود یعنی خداوند متعال نه تنها مکان دارد از هر مکانداری مکان, داری مکان است یعنی اولا اینکه خدا مکان قرب م... برد مکانی اولا اصلا مورد شماها نیست شون این حرفو نزن چون تمام افراد مکان من نفسا خودشون خداوند متعال ازد خداوند متعال متمکن در مکان است از هر مکان داری مکان است خیلی نه این که یه چیزی نیست شما از نوای نه فرو بزنی فهم از سوکه بینی اصلا, بین. اصلاً رأسانه دو کیلومتر چیش می‌ندازه بین آیات هم از دو حالا می‌ذارم این نشستش اشاره کنم ببین آقایان شما قرب رو میگن نمیشه قارب معنا کرد خب یه اصطلاحی داریم ما در قرب در متن دینی فراوان در ادبیات دینی فراون دست نیاز به تأویل نمی‌دی حالا ما می‌گوییم که شما بخوای تأویل بکنید این اعرابو در متون دینی ما هم فراوان و اون تحبیه این چیز آقا جان غرب معنوی کلی در آیات و روایات با دلیل و غرینه 100 درصدی این بحث به معنوی مطرح شده چرا اینجا شون غرب معنوی رو مطرح نگرد اصلا همین که داریم یک نزدیکم به شما به هر حال آیه داره غیریت رو ثابت میکنه، دعیت رو ثابت میکند وعدد شخصیه نشد که این اینی که دارم عرض میکنم میخواد تعویلم بکنی که خلاف مبنای شما هست تعویل شما ابعد التعویلات این مجموعه ای از خدمت شما عرض بکنم که آیات که گویند این رقمی است مثلا خدمت شما عرض بکنم که خیلی خنده داره میخوام می‌خوام نشونتون بدم حالا یکی دو تا راه اشاره میکنم بعضی از روایاتی که روایاتی که سری هست در نقد و رحدات شخصی وجودم اشاره بکنم بد نیست رو این فرصت اینا اشاره بکنم ببینید مثلا به این تعبیر خیلی جالب کل این خدمت شما عرض بکنم که حال کن الا وچه سوره قصص آیه 88 مثلا از است که خیلی با گردن کلفتیه تام و تمام به این آیه تمسک کردن کل من علیها فان خب بعد ببینید خیلی خنده داره ببین مثلا اینی که دارم عرض می کنم اینا همش توی مطرح ترین ساعت های علمی حوزه استا اینی که واقعا خدمت شما اول بحث گفتم در فضای وحدت شخصیش وجود شما تمامش می بینید که مدعا مطرح شده دست و پا زدن دلیل براش درست کنند بله انسان از دلیل به این مدعا نمیرسه این تو نیست که از این قایم برسد. همش همه این افتضاحها و پرت و به خاطر اینکه دست و پا زده شده که غالب بکنند چطور میشه کسی اینقدر پرت و پلاو تو ساحتهای لغوی اصلا دوره تو لغت برد نیستی ادبیات برد نیست کل شیعن حال کن الا وجهه خب تمسک بهش همش تو همین کتابی که ارز کردم اومده این کتابی که حالا خیلی بعد ویرا گفتم اسمی نویسنده رو بمانه، کتاب مشهوره دیگه، با عرف نظری که توی این فلسفی و غیره و غیره و غیره همینو در دست میشه نه اون یکی آقای احسن همه که آقای که کفت خدمتش رو عرض بکنم که خب چیم تربیر کرده؟ گفتی خب حاله که هنی نابود همه چیز نابود است جز خدا خلاص شد بحث بحثت بحث وحدت شخصی وجود خدمت شما عرض بکنم که خب اینجا باز نقده های خیلی فراوانی داره که بعضیش رو ما در بحث توضیح وجه الله توضیح دادیم و در مجموع آیت وچه آجنسا وچه الله یعنی چی؟ همه چیز نابود از جز وچه الله و صحبه،, صحبه،, صحبه،, صحبه، از خدا کنید، سخن از وچه الله خودش این دویت خدایی هست یه وچه هست حالا ما مفصل هم به حساب لغوی بحث کردیم که اصلا وجه یعنی چی؟ یعنی شما روایات هم بذاری کنار وچه الله لزوماً دو دو تا چارتای عقلی، سندی هم باشه این الله میرسی به اهل تو روایات هم که فراغان، اینه وچه الله لذیب. و و و و, و. نحن اما از یه ساعت دیگری میخوام مثلا این نقد رو آقا جان چرا؟ آقا جان شما تو چه قاموسی اصلا داری حرف میزنیم؟ ببخشی میشه علمتون رو لاغه به من توضیح بده من بیام با شما همراه بشم لغت از کجا در آوردی؟ چجور شد شما حالک رو به منای عدم گرفتی هر چیزی عدم است بسید شخص بوجه نمیده اینجور من نکن. آقا جان ماده‌ی حلکه رو تو هر جا شما بری جز یه جا جز یه جا رو آنه خدمتون عرض بکنم بد نیست تو این جلسه تکلیفتونم با این آقا مشخص بشه همه جا شون حلکه یه چیزی هست نابود شد رفت خلاص شد این نه حلکه نابود شدن حالا ما هست نمی‌خوام دیگر وقت طرف کنم. خب خود این یعنی نقد وحتیت شخصی بود. بوده دیگه نابود شده خب میگن سیال سوممازا بله همه چیز جز از بین میره خب سوممازا فاحت وجودش کجاش شد اینا اینجوریه همه چیز الان عدم است شما میبینید که آقا اینی که عرض میکنم اصلا از ساحت علمی بدورن متاسفانه من یه چیزی رو حالا زمانی که آقایون تو بعضی ابهاس ما بودن اینو میگفتم می گفتم آقا من آدمی که چرت میگه اما قشنگ چرت میگه خوشش میادم یه ساحت چارچوب علمی داری آدم ارزه سر و سامون نداشتن و نداشته باشه دیگه خیلی بده آخو یه لغت مراجعه و محص رضای خدا حلاکت بوده نابود شد وقت از وجودش کجاست ها یه لغتی رو من گیر آوردم این هم تکلیف از اون رو با این روح ازشان کنم و اون توش اینو نوشت. نوشته کتاب کتاب مفردات راقب اسفان آقا من تکلیف از مفردات را اشاره کنم. اب نداره حالا آقایون اشکال نداره مقدار را از ما شاید معاف بکنن. ببینید ما تقریبا بحث های شناسی خیلی فنی داریم. همش توی ساحت اجتهادیه. توی مجموعه ابحاث تفسیریمون موجوده نیم. میخوام بگم فقط این یه نمونه نیست اگر دارم در مورد مفردات ارز بکنم. یعنی خدمت شما عرض بکنم که میتونید تو مجموعه اباص تفسیری ما تو معمولا یه جرزیه جلسه جلسه پنجه جلسه اولش بحث‌های لغتی لغاتیه لغویین و لغوین رو همه رو بالا باین با کردیم از بدء زایده شدن اون چی گفتی؟ این گفت چه جوری اصلا میشه مواجهه کرد ببینید آقای مفردات آقای راغب اسفانی توی این تکه چرا از چه جهت تکه از این جهتی که آقا مسلک عرفانیشو چپونده به لغت یعنی شما خیلی جالبه. خیلی جالبه. ما تو اصول چی بهش میگیم؟ تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه نفس دلیل. یعنی شما میخواه آقا ببخشید حالک در اینجا به چه معناست؟ کلوش این حالکون الا وچه؟ میگه ها حالک به معنای عدم است به خاطر همین آیه کل و شاین حال کنه اللو بچا آقای راغب اصفهانی دقیقاً همین کارو کرد شما می‌بینی هیچ کدوم از هیچ کدوم از اصحاب لغت اصلا ذکر نکرد هالکات به معنای عدم آقای راغبی حرکت به معنای عدم از کجا عزیز من به به چه معنایی قشنگ اصلا همین آیه کل و شاین حال کنه اللو بچه ای بابا ای بابا بقی از اینجور کارا کرده شما موارد فراوان دیگری رو مواجبه بایدن الان این بحث خلودی که خب دقت کنید الان بحث ما نیست بحث خلودی که بعضی ها گفتن ها یعنی زیاد موندن نه دوام هیچ کس از لغوین ذکر نکرده جز همین آقای راقب همه شو ببینم آقا آقا این اورفا او ببخشید شما چی میگید آیونه متصوفه شما چی میگید اینو میگی خب پس معنای لغت اینه اینو ورشته ببینونون چی میگن آورده شاپونده تو معنای لغت لذا به نظر حقیقی هیچ اعتباری ندارد کتابش خیلی خوشگل شما مثلا بعضی از معانی قرآن رو اینی که بعضی هم این تفسیر علمیزان دیگران خیلی به این کتاب تمسک کردند چون بعضی از معانی لغوی قرآنو جونتون در میاد در بیارید این من خیلی خوشگل رو کوبسنده قشن ترتمیز گفتن خدمت شما اما آدم به ساعت‌های استنباطیش کار نداره اینم ساعت استنباطیشه خب آقا جان کل شاین حال کنه لا اصلاً هیچ رفت و شخصی وجود نداره یه روایت من اینو خیلی دارم می‌خواد خدمتتون arz بکنم این روایت واقعاً جالبه چون دیدم آقایون دیگه اینجا گفتن که بیاد ببینید ما دیگه له کردیم هر کسی که قائل به اینه که وحدت شخصی وجود رو قبول نداره بیاد دیگه اگه می‌تونه اینو جواب بده دیگه گردن تو انتها. من چون حالا عرض بکنم که مدت ها تو ساعت های فلسفی بودیم دیگه. بعد دیگه حسلمان سهر رفت کنیم خداحافظ خداحافظ شما. تقریبا عرض بکنم این حالا یه, تا... یه فکرتون بازاشید. تقریبا سی تا کتاب فلسفی رو سر کلاس رفتیم. بحث‌هایی که ما مصرف می‌کردیم خارج بودیم. اما نه خارج فلسفی. یعنی چون ما تو فلسفه غرب و شرق آینه بگیم و اینا خلاصه اینارو ما شوخ می‌زنیم. آثار ارث فنیش رو بگیم که از بکنم دیگه شوخ می‌زنیم. یعنی کل مجموعه آثار ابنا عربی و غیر و آینه‌ها خیلی فرق دو. می‌ذارم با این آقایان از بکنم که هشرونش زیاد داشتیم آینه‌ها. اینی که از بکنم خیلی دیگه گردن براز دیگه هم هلو مبادس. به واقع تو خدماتون بگم وقت نگذره. این روایت شریف در کتاب توحید صدوق رضوان الله تعالی رضوان الله تعالی حالا آله عجایب سخنور رحمت الله علیه او شیخ صدوق یک یک یک خود عرض عرض بکنم ما خودمون توی علمای شیعه یعنی شای انا یادم نمیدن یعنی بیشتر از ایشون به کسی حالا تو اصر قیبت ارادت داشته باشه. خیلی جلیلی تو ساحتهای مختلف حتی عقلی اینو دارم میگم و حتی عقلی خب بگذاریم ببینی روایت چیه؟ روایت اینه قال ابو عبدالله علیه السلام سند روایت که بماند یعنی اینا از پس سند روایت بر نمیان حالا ما مبنایی داریم در بحث رجال باز این مباحث خارج رجال ما چند دوره گفتیم تو همین کانال ما موجوده اونجا مفصل توضیح دادیم توضیح این روایت رو حالا به توضیح مجموعه اسناد چجوری میشه ورود پیدا کرد. این آقایون از پس تنده روایت که برن نمیان، هیچی بگذاریم متن روایت، یعنی میخوام بگم که شما از همون اول خدمتتون که اینو یا هاشونو سند داره ولات بگین حال کاری نداره حالا برید قال ابو عبد الله علیه السلام تمام صادق علیه السلام ای شيء الله اکبر ببینم آدم زرنگ پیدا میشه اینو نقد کنه الله اکبر چیه میگه که جناب جمعی ابن امیر داره میگه خدمت شما عرض بکنم که تعبیر اینه که میگه من گفتم الله اکبر و من کل شای، یعنی خداوند متازه از هر چیزی بزرگ داره فقاله خب کنید که بیدم کی آدمه الان این عصر ای کی داره امام زمان خوشحال خوشحار میکنه نقدش رو بیان بکنه از اینجور نقدایی است که خیلی واضحه اما ممکنه نبینیدش و هزه می فقاله وکانه سمشی اون فیکونو اکبر من یه بار دیگه می الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر من کلش ای؟ از هر چیزی وکانه سمشی اون فیکونو اکبر من معنایی که اینا می کننم بگم بگو مگه چیزی غیر از خدا هست که خداوند مطال از او بزرگتر باشه وحدت شخصی وجود به به به به ما اسلاما بیایید به داد اسلام برسید که نمیدونم اسلام از بین بردن و گفتن که کسرت وجودو آقا هم دیگه و بزار وجود شرک خب چی جواب میدید شما؟ بعد حضرت فهمانه فقال تو ما هو و چی بگیم حضرت فهمانه بگو؟ الله اکبر من یوسف بزرگتر است که، از این است که وصف شد یه بار دیگه بخونم بیدم کسی به ذهنش ما توی یک از این بحثای خیلی سال گذشته با آقایون یاد دادیم یاد که خودمون کوچکتر از اینیم که یاد بدیم گفتن آقا ما هر چج گیر می‌کنیم واقعاً همینطوره از یه توسلی به حضرت زهرا می‌کنیم و حضرت راه رو مشخص می‌کنه یک از آقایین بحث بود دادم از چاد جزء ضعیف‌ترین آقایین بود یادم تو یکی از این جلسات همه نشستو هیچ کی دست جواب ندون آقا گفتم حاجا ما توسل کنیم از زهرا اومد خیلی قشنگ نزدیک شد ببینید یه بار دیگه می‌خوام و کان سم شی فیکون اکبر من خب بفرمایید. نه این معنا نه نه معتونه دقیق خیلی ببین من حالا آه آه چیزی نشی، آقایون خستند در هر حال خیلی بحث کنند، نتونستان جواب بدن البته، بید خدمت شما حد کن، ببینید، اینجا یه کلمه داره این که این آقایون ظاهراً معناش نمیکنن. فقال حضر می‌کنند، و کانه سمه شایی، اون سما اینجا چرا معناش نمی‌کنید شما؟ سما چیه؟ بله؟ سم سمه چی در اینجا؟ سمه اسم اشاره است به مکان بعید یعنی حضرت میفهمن که تو میگه الله هکه بازه میفهمند که اونجا اونجا نه اینجا نه همه جا اونجا تو ساعت ربوبی مگه غیر خدا کسی هست که خدا بشه باشه ازش خودتر باشه، تر بشه. ساده تر اصلا تو امکان مقایسه با خدا رو بر من بیان بکن ثبت الارس و من قش اصلا امکان مقایسه فرض مقایسه محال است تو ساحت روی سمه، اونجا کجا شده احده شخصی وجود ببینید روایات فراوانی هست، بحث کنیم بریم سوال پرسش حالا سوالی داشته باشن از آره من اینو فقط بگم اگر سوالی دارن عزیزان الان مکتوب بکنن که به هستن همکاران جماوری بکنن تا جنابایی تو کار رو به اطمینان و بحث جمع اگر نیست که بیشتر از بیاناتشون داریم لذت میبریم و بیشتر استفاده میکنیم. ولی والا امر الیکم هر چه سوال جمع بشه بنده سوال میکنم، خدمت شما رادم از من وانت نازش شدم برای آدرس کانال رو که چاپش تموم شد، ولی خودم خیلی دوست داشتم خدمتتون بدم. چاپش شده، تو کنید، چاپش کنید، ان همهش همش موجوده همه تدریس‌هاش توی این کانال ما مؤسسه مصحف فاطمه آقای هم اجازه گرفتم گفتن اشکال نداره آدرس کانال بدین گفتن اشکال نداره. مؤسسه مصحف فاطمه تو اینترنت کنید هم اول مدت آپارات برید توش یه ده دهدوازت شاخه علمیه تو بحث برید عرفان و فلسفه اونجا مجموعه دروس از اول و اول بحث وقتی شخصی وجود گرفته شده تا آخر انسان کامل تمامش نقض شده این تمام مباحث خدمت شما عرض بخونم مقام ذات و تعیون اول و ثانی رو نمیدونم تمامش حتی مباحث عقلی شد ما چی دریل عقلی اینها آورده بودند و نیاوردند نقد کردیم. یعنی بعضاً حتی کمک کردیم. گذیم، آقا ببخشید، شما خیلی شل تقریر کردی، این تقریر ما، خیلی ما، پس رو تقوییتش کردیم، بعد کوبوندیمش. مجموعه ابخواستش موجود، عزیزان میتونن مراجعه بکنن که تقریباً ما ببینید عزیزان یک دوره تقریبا و پنج درصد فلسفه 100 رو هم نقد کردیم یعنی یه توری چیدیم بحثا که بحثای اون رو هم بهش بپردازیم خب نه نه چون نه نه اونجا موجود نیستش یعنی همونجاست فکر میکنم آقایون بعضی فایلاشو داشته باشن فایلای وحدت وجودش که نزد آقایون موجوده صوتیش عرض بکنم که بقیهش هم صوتیش اعلی قاده موجوده اگر نخواستید من صوتیش رو بفرماید خدمتتون میدم لاغر صوتیهاش رو گوشت بکنی کل بحث عرفانه خب، سوال دیگه ای نیست بریم آقا بعضی از روایات رو ببینید، حالا ببینید واقعا بحث روایات ما و نظر اهل بیت اسمت و تهارت چیه یعنی عرض بکنم خدمت شما که بله روایات ما ببینید از این سریه‌تر یعنی یکی مثلا بیاید بخواد به یکی وحدت شخصیه وجود غلطه ببینید از این واضح‌تر میشد کسی بیاد این حرف رو بزنه. اینم اشاره می‌کنم بحث به سوره توحید تمسک کردن الله الصمد خیلی واضون تمسکش کرد خیلی افتضاحه. همش همینطوره یعنی اگر اینها صرح نکرده بودن ما شاید اصلا طرحش نمی‌کردیم چون خیلی افتضاحه یعنی واقعا آدم آب روزی ته کردنش. خدمت شما عرض کنم ببینید بعضی روایات ببینید خیلی تمسکات دیگری هست که حالا اینو موجوده دیگه من آدرس دادن که هم صوتیاش موجوده ببین روایات خب دقیقی چند تاشو تن تن بخونم تمام این که اینجا آوردیم سندش درسته است. خب ببینید کافی جلد یک صفحه هشتاد و سه سریع. کافی جلد یک صفحه هشتاد و سه از آهای زراده سمیه توها با عبدالله ان الله تبارک و تعالی از این از این صریح‌تر ده ما بیاد بگه آقا جو وجود غلطه چی بگم آقا این چی بگم دیگه تو مثلا بفهم ان الله تبارک و تعالی خلل من خلقه خلق خل هو من از این بهتر بابا خدا خالص از خلقش خلقش هم از خدا خالص است کل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله عز وجل فهو مخلوق بابا غیر از خدا همه چیز مخلوقه از این سطر تا دقیقاً خلون من به خدا هم خل... خلون من خلقه فرموش هست عرض بنده اینه که خب زمان که داره میگذره این هم سوالی که خدا به شما اگر مایل بودید پاسخ بدید اگر زمان داشتیم ولی زمان دسته شما اگر نقطه سر خط داشتین این سوال رو هم جواب بدین تو عزیزان سؤالتی دیگه این اولین سوال که آقای عرض بکنم خدمت شما یه کسی ما ماساج بده دو ساعت ما بس کردیم نمیدونم چون نمیدونم کیه آقا من سوال رو بکنم جواب نمیخواد بدم ببینید نگاه کنید خیلی خیلی الحمدالله تجلیل کردن ساحت علمی آقاونی که نشستن بعضی اخبار و آیات نافی وحدت وجود است و برعکس برقی از آات و اخبار دال بر وحدت وجود پس محل نزاع این است که آیا نصوص دینی دال بر وحدت وجود است یا خير فلذا شما حق ندارد آقا من تگسامینگی شدم. خیلی دیگه آب نقد عجیبی است. شما حق ندارید با ارجاع روایات دال بر وحدت وجود به روایات نفی وحدت وجود. ما اصلا کاری کردیم؟ آقا ببخشید. مثل اینکه خواب هم تشریف نداشتن. ما از اول داریم چی میگیم؟ اصلا ارجاع دادیم یه دونه از اول کلام اون روایت وحدت وجود گفت این با ارجاع رب... بله، روایت دال بر وحدت وجود به روایت ناف... نافی وحدت وجود روایت وحدت وجود نفت کنید. آقا بند خدا مثل که شما در عالم دیگری بودی. اصلا تو اینجا از, از اول جلسه ما مثل اینکه هیچ چیش رو نشنیدی. ما بعضی موقع تو این ساعت های فلسفی که بودیم، من درس می توی مکه. حالا برش کنید، تو بعضی مراکز فلسفی با خیلی از این آقایون عرض بکنم که نشست و, داشتیم و اینها. خدمت شما عرض بکنم که من بعض این واقعاً تحجیب می‌کردم. یعنی می‌آوردم بیرون می‌گفتم آقا این آقا تو حوضه ولم چرخیده باشه. یعنی کسی ول چرخیده. اصلا همینجای من چرخیده. این رو بلد. بلد. حسین سال اول آقا, آقا ولم نچرخیده باشه. سر کلاس ما خوابیده باشه. باید این هم بلد. پیچی. خب، این کیش واقعاً من تعصف میخونم از این که اصلا طرف عرض میکنم هیچی چی نفهمیده بحث ما هیچ این کارو نکردیم اصلا خب بریم سوال دو. بعضی روایات وحدت وحدت وجود الا ما الا کل شیء ما خللا باطلون این خدمت شما عرض میکنم یه شعر خیلی خنده‌داره شعر نفی نقل یه شعریه که در کتاب مصباح شریعه ظاهرا آمده نقدش مفصل و واضحه اصلا باطل به معنای عدم نیست عزیز من قربونت بشم من اینا رو من ارث کردمه شما بار دو تا سه تا دونه را می‌خواستی بگه که من نقدش بگم اول جلسه‌ای می‌گفتم عادت می‌آوردم وقتش مثلا می‌خوام دو بارون تفصیلی برید کنم با آدرسش با تمام جرها و تعدیلش اینا که زیاده که خیلی هست الان مثلا یه چیز دیگه برام نه یه چیز دیگه است خب علی و علی ولی ابدان و الاوصیا و ائمه ابدان بتسمی و اخر احد الله جلل خد جلال خواه شما یکی از اخطاب صوفیه میشه من از رفتش رو نفهمم شما می‌فهمید <تصفيق> علی علی ابدا <تصفيق> لا احد الله خب لا احد الا الله خب احدی نیست جز خداوند مطار خب لا اله الا الله دیگه معنای احد آقا جان خب با یک کمکش کرد عرض بکنم خدمت شما معنای احد به تعبیر تعبیر ها قایونه ما تو بحث قوله و الله عهد الان بحثش اینجا مطرح نکردیم این تو اون کانال موجوده معنای اهد یک اصطلاحی دارد به حسب لغوی و اصطلاحی که یعنی خود اون ذاتی که ارز بکنم خدمت شما نظیر و شریکی ندارد لذا خود متمسکین به اونو اینها هستند بعد تعبیرش هم اینه که تحصیب الاحکام تحصیب الاحکام این چی مرمون شیخ جلد سه صفحه 617 حالا این تعبیرش هم اینا خوب دقت بکنید اینا الان همینجا بهتون یاد می حالا من این عبارت رو اصلا ندیده بودم ولی ارزم می کنم. مشکلی ندارد. چون احد ما بحث سوره توحید رو مطرح بکنیم برای شما فکر کنم دو جلسه فقط توضیح اهد و تو کلمات و عرفا وقت براتون بیاریم اصلا به این آقا بعد بگیم آقا ببینید چی داریم میگه خدا. خدای جز خدای یکتا نیست اگرم باشد اما جان عبارت اووردن خوب دقت کن خوب شد اینو گفتی. عبارت بی آدرس آوردن در بحث های عرفانی فراوان است بسیار زیاد بود. بسیار شما روایات رو تو کتب عرف ها هیچ وجود خارجی ندارد تو آثار صدرا هم میبینید هیچ وجود خارجی ندار آدرس دادن و اینی که حتما متنها آورده بشه ببینیم تو همین بحث وحدت شخصی وجود دو سه تا متنی که محل تمسک هست اینها آوردیم ظاهرا زیل همین سمت. بعد متن رو او آوردیم ببینید اصل متن نقدی فران کتاب این متن اصلیش اینه حتما این مقایسه این متن ها رو باید داشته باشید که اینا سرجاش خب توحید و هو تمیز و من خلقه و حکم و تمیز و با اینکه بابا جان کلام آقای تبات تبا این یک عرض بکنم که تو مجموعه روایات اووردیم لا بینونه عزلت اینو من الان اینجا تو همین کتاب مفصل بهش پرداختم که عرض بکنم که بهش هم پرداختم که اینها معمولاً به یک تبیع از تباتایی تمص می کنن که اگر میخواین حالا اینو من الان تفسیدم بهش میپردازم. مفصل تو همین کتاب ما این رو بحثش کردیم فلش های کل غیر غرم ماز این هم این میتون بحثش کردیم نمیدونم تمازشی بهشون لابان من ها اشاره کردیم الان من هم اول اشاره کردیم ادعای و که به روایات وحدت شخصی وجود و آیات زیاده قیدی شما کاره مثلا آقا جان اینا هم اولش گفتم اینجا الان فرصتش نیست بخواین جونش رو نقد بکنیم نقد میکنیم با این پیانی ارزی پی... که ما داشتیم شما میتونید جوابش جب... جب... بدید خب اینه که چیز خاصی که نداره دیگه اگه میخوایی ما اینا به بپردازیم فرصت به همینا بپردازیم هر جور صلاح میدیم من فقط دیدم که معمولا پیام ها رو از صبح تا حالا این پیام دادم همین پیامی که عزیزان نوشت کلاس ما که نبود. از چرا کلاس شما بود. و من ده می خوندم اینو که دیدم دیدم هر جور من بخوام به شما بگم از لطفش کم میشه بله حالا اگر از اینا کسی رو میخوایم هر رو میخوایم ما از این چند تا دونه ببینید ما خلل الله الا که شعر شعر شاعری گفته نمیدونم دونم اینا اگر میخوای لا بینات فی کایل اخله فی عشاء کلا غیر متمازجم به تو بحث روایات مفصل نقدش کردیم حسابیا لغوی فلان بله اون آخرشم که هیچی لا شایع الا لا فرفه نمیدونم چه که ظاهرا خود ایشون هم علقاده نواد روایت باشه تو بهار آورده اینم علقاده نواد روایت باشه اگر میخوای اینها رو بفرض مگه نه همون چند از روایاته. تو این تته وقت روایاتی که نافیه وحدت وجود هست بفرداش خب ان شاء اینها عرض می‌کنم خدمتشون ببینید اینها تیتر بحث‌ها تیتر بحث, تیتر بحث یعنی ما وحدت بحث, بحث بحث شخصی وجود تفصیلی خیلی فراوان حتی عدد نقلیش یعنی تو یه ساعت شما می‌خواید ما مثلا همش براتون نقل بکنیم نمی‌شود خب چیکار کنیم اینها رو ن... این چند تا از اینها رو بگیم بریم روایت ممازجت یا چند تا روایات رو بگیم چند روایات رو بفرمایید روایات رو همین روایاتشو رو همی روایات بگیم سوال دستی... هر کس بود نوشته حالا آقایون نمیدونن که نوشته شده کسستم برای خیلی ناامید کنن دست من بله این این برگی که دستم هستو اونم که دیگه اصلا چون واقعا نامید نا کنند دست بله خب 36 بله آقا اینم رو از کن تا اینو بیاریم ببینید ادعا واقعا همینه ده ببینید یه کاری که ما انجام دادیم خدمت شما عرض بکنم یه کاری که ما انجام دادیم اینو هر کسی میخواد بیاد تو بحث و اول حساب خودش رو داشته میشه ببینید تو, تو بحث های تاریخی وحده شخصی وجود طوری ورود پیدا کردیم که انگار هیچ چیز نداریم جز تاریخ اینجوری ورود پیدا کردیم تو عدله نقد، ادله عقلی وحده وجود طوری ورود پیدا کردیم که انگار هیچ چیز نداریم جز همین عدله عقلی یعنی سر سوزن شما واقعا به معنای حقی سر سوزن تمسک نقلی از ما بینید. ود و توی نقد عدله نقلی و آیات قرآن روایات هم همینطور یعنی ما اگر ده تا نقد پنج تا شیش تا هفت تا تو هر زیل مبحثی نقد کردیم یک دونش که به سایر موارد نیست همش بحثای درونیه که خودش دلالتا به این معنا دلالت نداره چرا یک دو سه چهار پنج تا که بحثش تفصیلی کردن الان ورزای نیست داشتم به استاد تو خیلی از چون عزیزان روز جمعه تعطیل رو گذاشتم و دیگه واقعا خسته شدن بله ما یه پنج دقیقه دیگه خدمتون هستیم و پنج دقیقه برای بحثم عرض بکنم و شما می‌فهمید نه نه 5 دقیقه خدمتتون هستیم که برای جنبندی جلسه بله حالا اه... آره من تو این پنج دقیقه خدمت شما عرض بکنم که ما حسل, ما حسل کلام رو بخوایم خدمت شما عرض بکنیم که حالا روایات باز نافی وحدت شخصی وجود روایات است که تعبیر فراوانی آمده و خدمت شما عرض بکنم که حقیقتن حقیقتن شما در سرتاسر سر, سر متون دینی بررسی بکنید تمام آیاتی که آخرش داره هو به کل شیءن علیم متفکر که از سوالات فضای مجازی است که از این روایته هو الاول و الاخر آیه اسقیم کردن اول اول زود گذشتین بله. شک از بیشتر توضیح بدید اس کردم اس کردم،, کردم, کردم اینا همشون یه جلسه نیست یعنی همشون ما شاید برای زیله همون پنج, پنج تا نقض، تا نقد خیلی فنی نیداریم تو سر حوال اول اصلا الف و لامش به چه معناست نمیدونم آخر ظاهر اطلاقی و ظاهر غیر اطلاقی یعنی که کلیش و شاهد آورده اینو بحث های خیلی تفسیلیست که الان فقط توی ساحت و یک نمونه صحیح. بحثی خواستیم صحیح. اشاره بکنیم میخوام ارز بکنم که ببینید واقعا خدمت شما ارز بکنم که یعنی در تمام مطهون قرآن و روایات شما می‌بینید بحث کسرت وجود و اینی که به هر حال ساحت خداوند متعال با ساحت مخلوقان متفاوت است و اینها واقعا ذاتا متفاوت هستند، وجوداً متفاوت هستند، بسیار واضحه بحث وحدت شک تشکیکیه این کلمه هم بذار اشاره بکنم ببینید بحث وحدتش تشکیکیه یه که صدرا مطرح کرده یه برهانی که بسیاری از بسیاری از عرفا به عنوان برهان وحدت شخصیه گووردند و آقای صدرا به عنوان وحدت تشکیکیه که بحث این است که بحث همان اصالت الوجود تعبیر می کنند آقا جان اینو من بگم تتمه بحث خود حقیقت وجود چیزی به نام وجود این استلاحا معقول ثانیه فلسفی یعنی چی یعنی ما اصلا چیزی به نام وجود نداریم وجود صرفا انتزاع ذهن است شما از شما شما دارید نفی عدم میکنید؟ کش می‌کنید نیستی نیستید اسمشو میذارم؟ وجود ولی اینی که یه قلمبه ما تو تعالمه خارج داشته باشیم به عنوان وجود که بعد بگیم که حالا این قلمبه اصلا حد نباید داشته باشه پس برسیم یواش یواش به های وحدت تشکیکی یواحده وجود این هم غلط است عملا وجود صرفا انتزاع ذهن است جالب است این اینا اینا اب نداره خدمتتون عرض بکنم اتفاقاً، این رو شما میتونید تو کلام بعضی از فلاسفه معاصر مثل مثلا آقای مصباح هم مشاهده بکنید که با صراحت به این مسئله تصریح دارن تو این حاشیه بر اندهایی هم شما میتونید این رو ببینید که بابا جان اصن شما راه رو اشتباه رفتید وقت این یه وقت گذشته نکته دیگه جناب توراهی عزیز داشتین یه نکته ای رو میفرمودید در مورد و هو به کل شیءن علیم و بحث میخوام شهید شقیق نشه ادامه بدین اگر بلده بلده. امکانش هست منظور اون تکی که مد نظرتون بود و توضیح آها می اینو میخواستم عرض کن. ببینید اینی که در بسیاری از همین آیات اگه داره تَمَسُّک وحدت اشری می شه وحدت شخصی می شه تَمَسُّک به کل آمده همه چیز تو بسیاری از آیات قرآن خداوند متعال اثبات همه چیز اثبات موجودیت بقیه موجودات رو می کند. در حالی که به تسریح وحدت شخصی وجود که البته ارز می مفاد مفادلیست خود متناقض همینی که تعبیر کردن اول بحث واقعا درست است مفادلیست خود متناقض عملا به حساب وحدت شخصی وجود بقیه موجودات هیچ وجودی ندارند حتی غیر استقلالی حتی غیر استقلالی حقیقتاً یک شخص وجود است در این عالم لذا برای تفهیم این دست به مثال شدن و قابلیت تفهیم ندارد این بعضی ها بحث سراب و بقیه مواسی که ما اینا رو خیلی تفسیری تو همین کتاب مطرح کردیم اینها مطرح شده میخوام خدمتتون عرض بکنم که بله کلام از چی داشته میکنم بله آخر خسته بله یه لحظه حواست خدمت بده. شما پس عرض بکنم خدمت شما که بله از برز از دستم روید ندارم چی حواست پیش کاری با... هر وقت بازیادتون اومد یکی بگیروند همه خواب هم همه در حالت خمفه حال جناب آی توبایی عزیز اصلا لا حرجه بعد بله نه نه حرف آخره بود کلمه آخره بود چه بود خدمت سروران آرزم که تا جناب آی یادشون بیا بله تا جناب آی یادشون بیا چند نکتر رو عرض بکنم خدمت سروران عزیز اون عزیزانی که مایل به همکاری با آموزش و بخش آموزشی و پژوهشی تصوف هست. من میل دارم به این کار با جناب های شیدایی حتما هماهنگ بکنن که از محظرشون استفاده کنیم. نکته بعدی این که سرورانی که این پکه هدیه ناقابل رو نگرفتن به فهم تقدیمشون بشه. از کانال ایتا خارج نشید که ما در فصل بعدی مجدد از اساتی دعوت میکنیم و بحث وحدت شخصی وجود یا بحث دیگری که تو این زمینه هست خواهیم پرداخت و قطعاً این مسئله جای گفتمان خیلی بیشتری خواهد داشت و حتما در نظر سنجی کانال شرکت کنید اگر سوالی هست پنج دقیقه پایانی و اگر نه که جناب بحث رو جمع بکنید بله بله. التماس دعا بله ما رو همین ساعت بود که این بحث طبیعی این بحث از بحث شخصی وجود عرض میکردم که این چون خود متناقضه و عملا طبیعی نداره تمسک به مثال هایی شده که عملا هیچ یک مثال ها به واسطه شخصی وجودم رفت نداری. یعنی در حتی طبیعی وحدت وجود هم نمیشود واقعا به مراحل نقری تمسک کرد بر و صلی الله ان شاء الله بکنم که خیلی مطلوب بود کاش که توی این لحظات غروب آفتاب حالا روز خدمت شما عرض بکنم که ولادت هست نمیشه روز خان کاش که حاجیان سخنور یک تو یک توسل یک کلامی بر از صدیقه انقدر خسته از خدا ما فقیر سلام بر از صدیقه تا قاعده بدی السلام علی که ها الصدیقه الشهیده اللهم صل علیها ایتها المظلومه المقهوره حقها المكسوره ضلعها السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته اللهم صلی علی محمد و عالی محمد و عدو تقدیر و تشکر میکنم از های توبایی عزیز و سایر عزیزان که حوصله به خرج دادم و از های توبایی که محضرشون استفاده کردیم انشاءالله که پاینده باشید به امید دیدارتون در جلسات بعدی سلواتی محضر حضرت معصومه تقدیم بفرمی اللهم علی محمد و محمد, محمد.